گون پری رخ به زیر پرده شاه خدمت اهل پرده داشت نگاه. بود چون غنچه مهربان در پوست. آشکارا ستیز و پنهاندوست. جز در خفتخیز کندر بست هیچ خدمت رها نکرد از دست. خانهداری و اعتماد سرای یک یک آورد مشکوانه به جا. گرچه شاهش شد سرب بالا داد. او چو خایب زیر پای افتاد آمدان پیرزن به دم دادن خامه خام را به خم دادن بانگ برزد آن عجوزه خام کس کنیزیش نگذراند نام شا از آن احتراز کومی غور دیگر کنیزکان بشناخ پیرزن را خانه بیرون کرد با خسونگر نگر چاپسون کرد تا چنان شد به چشم شاه عزیز که شد از دوستی غلام کنی گرچتان ترک دید عیاری همچنان کرد خیشتنداری تا فرصت آن چنان افتاد کاتشی در دو مهربان افتاد پای شهر در کنار آن دلبند درخزید میان خض و پرند قلعه آن در آب کرده حساب واتش منجنیق این برکار شاه چون گرم گشت از آتش تیز گفت با اون گل گلابنگیز که رتب دانه رسیده من دیده جان و جان و دیده من سر با دیا فشی پشت مه با تو آفتاب کشی از تو یک نقطه می کنم درخواست کنچه پرسم مرا به راست گر بود پاسخ تو راست ایار راست گرد از مرا چقده تو کار ونگه از بحر این دلنگیزی کرد با تازگل شکر ریزی. گفت وقتی تو زهره صحبه. در تدسیل با سلیمان نشسته بود بلغیس بودشان از جهان یکی فرزند دست و پایش گشاده از پیوند گفت بلغیس که رسول خدای من و تو درست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 به تون چار تاز بن ماید. مگر این طفل رستگار شود به سلامت امیدوار شود شد طولیمون بدون سخن خوشنود روزکی چند منتظر می بود چون که جبریل گشت هم نفسش باز گفتان چه بود در حوثش رفت جبریل و آورید درود از که از کردگار چرخ کبود گفت این را دوا دو چیز آمد وآندو هم در جهان عزیز آمد آنکه چون پیشتون تو نشیند جو هر دو را راستی بباید گفت آنچنان دان که آن حکایت راست رنج این طفل برتواند خواست خواند بلغیس را سلیمان زود گفته جبرئیل باز نمود گشت بلغیس از این سخن شادان کاز خلف خانه می شد آبادان گفت برگوی تا چه خواهی راست تا بگویم چنان که عهد خداست باز پرسیدشون چراغ وجود که جمال تو دیده را مقصود هرگزم در جهان زروی هوس جز به من رغبت تو بود بکر گفت بلغیس چشم بز تو دور زانکه که روشند تریز چشمه نور جز جوانی و خوبی افکین هست بر همه پایگه تو داریده است خوی خوش روی خوش نوازش خش بزم تو روزه و تو رزبان فش ملک تو جمله آشکار و نهان مهر پیغمبری حرض جهان با همه خوبی و جوانی تو پادشاهی و کامرانی تو چون ببینم یکی جوان منظور از کمن نای بد نباشم دور طفل بی دست چون شنیدین راز دست ها سوی او کشید دراز گفت ماما درست شد دستم چون گل از دست دیگران رستم چون پریدی در پریزاده دی دستی به راستی داده گفت که پیش وای دیب و پری چون هنر خوب و چون خرد هنری بر سر طفل نكتهای بگشای تا من دست و از تو یابد پای یک سخن پر نداری رنج که جهان با چنین خزینه و گنج هیچ بر قبع رس زند تمن که تمنا بود به مالکهسد گفت پیغمبر خدای پرست کنچه کس را نبود ما را هست ملک و مال و خزینه و شاهی همه دارم ز ماه تا ماهی با چنین نعمتی فراخ و تمام هر که آید به نزد من به سلام سوی دستش کنم نهفته نگاه تا چه آرد مرا به توفه زراح پفل که گفته آمد راست های وکشاد و از زمین برخاست گفت بابا روانه شد پایم کرد رای تو عالم آرایم راست گفتم چو در حریم خدای آفت از دست برد و رنج از پای به که راستی سازیم تیر بر تیر راست اندازیم خانوم خانومت باشوری بود و این دمیشون پیر زن میداد به زنا و اینا رو میگفت شما خانوم شما ملکه این شما هم توی که از نید تا که بگه به و چه خانوم چه خوشگلی تو خانوم ایتا هم گفت من تنیزم هیچ چی به جز کنیز صدا نکنی من اینجا زر خریدم همین همینی صدا کنید شنید تازه فهمید که همه هر کی می این خونه خانوم می این از کجا بوده که درزش کرد و خانوم دیگه از خدمت هیچ فرو نمیکرد. در کمال سمینیت در کمال مهربانی کار میکرد و خدمت میکرد و بود و جز همون مطلبی که از اول تحیم شده بود که این از اون لحاظ آمده نیست واقعی کار رو خیلی به صورت خوبی انجام میداد ولی خب بالاخره طبعه بشره دیگه اینا میخوابیدن یه شبی خوابیده بودن اینا پادشاپ پاش به خانم و خورسه مطلبی دید که میخواب دیدی که, دید که تو چرا رو میگه که حالا بیا یه خود حرف بزنیم و بهتر که راست بگیم و بعد قصه از سلیمان میگه که سلیمانو بر قصه بچه ای داشتن بچهاش دست نداشت پاهم نداشت و خود پدر مادر ناراحت ما بزن از این باب و به خصوص مادر بیشتر بعد یه روزی به پیغمبر به شوهرش که پیغمبر خدا بود میگه که ما هر دو تا سالمیم صحیح و سالمیم تاست کن این عدن این بچه چرا دست کنه و وقتی گبریل این دفعه آمد ازش بپرس که آیا راه چارهی برای این کار هست که این بچه درست بشه اینا گبریل آمد و سلمان هم گفت و او رفت در لوح محفوظی و گفت بله اگر که اگر که شما موقعی که با هم هستید و مشستید و دو نفری هستید اگر راست بهمی که بگیم این کار درست بعد میره و سلیمان میگه که والا این طوره و میگه که من عزیزت رو بپرستم جواب محلطه میگه که والا سلیمان میگه پاچه جن و انس و دیو و پری و بر طور و بر آتش و آب و باد و خاک فرمانش رواب و اصلا عشمت و نعمت و جوانی و قدرت و همه چیزی بایی و همین رو داشته میگه که آیا تو از سرهوست به من کسی نگاه کردی اگه بلا تو از هر جهت کاملی دیگه هر چیزی آدم بخواد در تو هست جمال و تمال و زیبایی و قدرت و مال و نعمت و نفوذ و آبرو و حسیت و همه چی. با این حال من وقتی تیه جوان خوشگلی میگینم که نظرم رو بیگیره یک چشمی طرف او دارم که به به میگه فوری دست های بچه درست شد میگه دست هم درست شد. بعد میگه که خب آقا من که راست گفتم دست میخواید دست می از من گرفت پارم تو بده تو پرش از شوهر میپرسه خب تو با این مال و با این حشمت و با این نهم میگه هیچی خداوند از تو کسر نگذاشته آیا با تمام این که داری اتفاق افتاده که چه شده مال کسی باشه بیدید این تمه چه چیز مجلسیه سلیمان خوب بله من هرکی میاد جلوم تعظیم تحکیم میکنه و باز یعواشوکی دست سونگا میکنم میرونم این چیزی برای من آورده نه نگوش بیگه بچه به باقا هم درست حالا این تمثیل و شاه واسه خانوم میزنه که این طور سود و این قصه و سلیمان بچه درست شد میگه خب حالا خانم جون. بیا ما با هم راست بگیم و بعد تو چرا دیرابلتی نسبت به من و گرفتاری چیه برای اینکه این طبیعیه تو ملک من هستید مال من هستید خیلی هم حالا دیگه دوستش میداشته بانوی خونه بوده به کلی اینام گیر من تو دوستت دارم تو مال من هستید تو ملک من هستید بلاخره طبیعته آمدن پیرزن به دم دادن یعنی خامه خام را به خم خامه چرم خیلی سخته و این را اگه به کجا کلش کنن کاملا خوشکه این پوست اصلا نمیشه باید اول عملش بیارم بعد خامش کنن مطلب دیگری که اینجا هست که باید برای شما بگم اهره در تستیس این اصطلاح نجومی محصول مقارنه دو تا ستاره پرموره میده سلیمان رو به غیست و همش مثل زهریس یا تستیس باشه بازگو ایزه مهربانون فرد پس چه معنی شده مهرت و سر من گرفتم که میخورم جگری در تو از دور میکنم نظری تو بدین خوبی و پریچهری خو را ای به بد مهری؟ سر به نازنده پیش چشمه آب بهتر از راستی ندید جواب گفت در نسل ناسطوده ما هست یک خصلت تازموده ما هد زنان هر که دل به مرد سپرد چون به زادن رسید زاد و بمرد مرد چون هر زنی که از ما زاد دل چگونه به مرد شاید داد در سر کام جان نشاید در زهر در انگبین نشاید کرد. بر من این جان از آن عزیزتر است تسپارم بدون چه زو خطر است من که جان دوستم نه جانان دوست با تو از عیبه برگشادم پوست چون زخان و افتاد سرپوشم خواه بگذار و خواه بپوشم لیک من چون نان هفتم با تو احوال خیشتن گفتم چشم دارم که شهریار جوان نکند نید حال خیش نهان که تنیدان آفتاب جمال زود چرا کند ماوسال ندهد دل به هیچ دل نبرد با کسی به سر ماهی هر را چون چراغ بنوازد باز چون شم در بیاندازد برکشد چون فلک به نعمت و نازد بفکند در زمین به خاری باز شاه گفت از برای آنکه که کسی با من از مهر بر نزد نقصی همه در بند کار خود بودند نیک پیش آمدند و بد بودند دل چو با راحت آشنا کردند رنج خدمتگری رها کردند هر کسی را به قدر خود قدمیست نان گرمه نقومت هر است شکمی. شکمی باید آهنین چون سنگ کاسیاش از خورش نیاید دنگ زن چو مرد گشاد رو بیند هم به دو هم به خود رو بیند بر زنی من مباش زن کاه هست بردش باز هر کجا راه هست زن چو زر دید چون ترازوی زر با جوی در آرد سر نار که از ناردانه گردد پر پخت و نپخته باشد دور زن چو انگور و تفل بیگنه است خام سرسبز و پخته روسیه است مادگان در کده هم خامشون پخته پختهشون خامند اسمت زن جمال شوی بود شب چو مهیاف ماه روی بود. از پرستندگان من در کس جز خدا راستن ندیدم بس در تو دیدم به شرط خدمت خیش که زمان تا زمان نمودی بیش لاجرم گرچه از تو بیکامم بی تو یک چشم زد نیارامم شا از این چند نقطه های شگف کرد بر کارو هیچ در نگره شوخ چشم از سر بحانه نرد تیر بر چشمه نشانه نرد همچنان زیر بار دلتنگی میبریدن بریدان گریبه سنگی کرد با تشنگی برابر آب او سبوری و روزگار شدار منطب کامیان روشنه دیدیم اینجا که خب بیمون راست بگیم بعد میگه که چشم ما گرفتاریم اون اینه در نسل ناسطوده ما خاصیت ما اینه که هر زنی که رو آورد به شوغر آبستن که شد و خواست به ذات و بعد اینیم آبادید این من میدونم که اگر با شما سردر بیارم بعدش مرگ پسطر نبید من اونم دوست دارم نمیخوام که ابونی بمیرم حالا منم که راست به شما گفتم، شما هم راست بگین که چطور شده بود که هر هفتهی هر چهار روزی یه کنیز رو میخریدید میفروختید تا برو شدید به کنیز بروش ببالا حقیقت که من هیچ کدوم اونا رو به خودم مهربان ندیدم سر دو روز یادشون میره اینجا تا پلو میخوردن و خونه آراسته میدیدن و وضع امور دیدن خدمت گریشون و خدمتگزاریشون یادشون میره یادشون میره برای چی اومدن تو این خونه و خانوم می شدن و تنها که من دیدم که هرچی نوازش کردم و هرچی محبت کردم و هرچی مهر کردم اون در خدمت و در خوش خدمتیش افزود تو بودی؟ از که با اینکه من از تو بی کام هستم نمیتونم دوری تو تحمل کنم و بعدمش شروع میکنه به دندون بزنه که الی زنک زنه که راضی کنیم اینکه نخ گوشت گاوو و خلاص پوخته بهشون نیست. چه شدیدان چلدن ترسیده بعدم میگه که در نسل ما هر کسی آبستان شد مرد فناورین نمیرم من اینجا. بالا هر چه کرد نشو. آچار تسلیم شد. با اینکه تشنه بود آب جلوش بود ولی سب بعد راه حلی برش پیدا میشه پیرزن کن بوته همایونش کرده بود از سرای بیرونش آگهی یافت از سبوری شاه که بدون آرزو نیابد را آجدش کرد نور زنی از تنی افتاد تهم تنی گفت وقت از اگر به چارگری رقص دیوان درآورم آورم به فرید رخنا در مهد آفتاب کنم قلعه ماه را خراب کنم تا دیگر زخم هیچ تیرزنی نرسد بر کمان پیرزنی با شعف سنگرانه خلوت خواست رفت و کرد ان فسون که باید راست در مکافات آن جهان افروز خواند بر شعف فسون پیرامود گفت اگر بایدد که کره خام زیر زین تو زود گردد رام کره رام کرده را دو سه بار پیش او زین کن و برفت بخار رایزانی که کره رام کنند توسنان را چنین لگام کنند شاه را آن فریب چست آمد خشت آن غالبش درست آمد شوخ و رعنا خرید نوش لبی، مهر بازی کنی و بلعجبی برد پرور ریاضتش داده او خود از نرم سم زاده باشه از چامپی و دمسازی صد معلق زدی به هر بازی شاه با او تکلفی در ساخ به تکلف گرفته ای باخ. وقت بازی در آن پکندی شد وقت حاجت بدین که چی دیدد ناز با اون نمود و با این خوب جیگر اونجا و گوهر اینجا سو رقبت آمد درشت که آن خوبن، در ناسبته را به در گرچه از راه رشک دادن شاه گرد غیرت نشست بر رخ ما از ره و رسم بندگی نگذشت یک سر موی از اون چه بود نگشت در گمان آمدش که این فن است اصل طوفان تنور پیرزن است ساکنی پیشه کرد و صبر نمود صبر در آشدی ندارد سو، تا شبی خلوتان چهر، فرصت یافت باشد در مه گفت که خود به پرشتنه ها داور مملکت به دین و به داد چون شدی راست بود و راست نظر با من از راه راستی مگذر گرچه هر روز کان شاید کام اول صبح باشد آخر شام تو که روز تو را زوال مباد شب تو جز شب وسال مباد صبح بارم چو دادی اول نوش از چه گشتی چو شام سرک فروش گیرم از من نخورده گشتی سیر به چند داشتیم در دمشیر داشتی تازه قصه جان نورم اجده برابر نظرم کشتنم را چه در خورد ماری در کشی هم به تیغ خود خودباری به چنین ره که ره چنین بازی که پرموده خبرم ده که بیخبر شدم تا نفرم که تیز پر شدم به خدا و به جان تو سوگند که از این قفل اگر گشایی بند غفل گمجگ و حرفی اندازم با به افتاد شاه در سازم شاه از آنجا که بود در بندش چون که دیده اعتماد سوگندش حال از آن ماه مهربان ننه گفتنی یا نگفتنی برگو کار زوی تو برفروخت مرا آتشی در پکند و سوخت مرا سخت شد دردم از شکیبایی و تنم دور شد توانایی تا همان پیرزن دوابش نا پیرزنوارم از دو را بنواخت دو دو دو دو دو از دوابنم به دروغم مزوری فرمود داشت ناخرده اون مزور سود که پیرزنه که زنک یک در بیرونش کرده دیگه ناراحت بود کینه هم داشت که تنهارایش هم پی کینه بود بخشی دید که شادر صحب بود اون ناراحتی نار رفت خلوت و یعنی فهمید به وقت چه جوده گفت که حالا من برم و کار این زن رو تموم که دیگه با پیر زنها بر نیفته. بعد به شاه گفت گفت اگه میخوای که این کره خام رو رام کنی رسم رام کردن کرره این میگه یکی از راه های رام کردن این است این است که یک کرره که رام شده بیارن سوارش بشن یه دوری بزنن بعد بیارن اونجا قند بزنن دهنش دست رو گوشش بکشن و اعتناب اون خوره نکنن یواش یواش حسین میشه میگه شام گربان پرتیب کار این است که کسی رو بیاریم که دست آموز و رام شده است و به اون محبت کنی ناشید بکنیم تا اون ببینه چه هم همین کار می کن کنیزی میخوره و فساطی و کسی که میگه که هزار رو علق میزه دلوشا و اینا و میاره و بعد کنیزه خیلی سخت ناراحت میشه. حواظ هم حواظ میکنه هم ناراحت میشه و بعد به شاهی روز میگه که قربان چطورست که شما با من مهری نداریم لطفی هم نداریم با ما مهری تو که چی نیستی من چه بکنم من که هشت ثبت کردم تو که راه نمیشی تو که راه نمیدین من چه بکنم قسم میخوره که به کی به کی قسم اگر شما پگیم که کی این رو به یاد شما داد منم این گفل از در گنجنه برمیدارم من رام من میگه همون تیرزنی اون ترکیب این کارو دار میگه که تا همون تیرزن دواق بشناخ تیرزنبارم از دواق به نواق به دروغم مزوری مزور یه نوع آشه. در این حال مزور یه جهلی در این حال ولی یه نوع هست که به مریض میده هردوشه و اینجا میگه که گفت که پیر میگه تو تظاهر بکن با اینکه این زنه که کنید که تازه خریدی بیشتر از اون دوستاری و جلوش به این محبت کنی و پسازت زنک رو جل کنی ولی در حقیقت که تو مهرت با این زنه ولی اونو این کار بکن که به دروغم مذبری فرمون یعنی آشی داد داشت خورد. صحبت خورد. خوردن صحبت خورد آشی داش ناخرده آن مذفر سوند نخورده بودم پایدهش در این حال مذفر و دروغ و نام هست یعنی یک کلکی من یاد داد که این کلک رو تا دست بزنم بهش فایده بخشی هر دوشه آتشنگیختن به گرمی تو این که تو رو تحریک کردم حسادت تو آتش انگیختن به گرمیه تو سختی بود برای نرمی تو که همین رو برای این که قانون نرم کن و به این تحضیب با من بر سر می یاد نشو از آق آتش گرم جزب آتش نگلد آهن نه من هم اگر آتشی تحضیب دادم برای نرم کردن تو بیش. نشود آب جز به آتش گرم جز به آتش نگردد آهن نرم گرنه از آنجا که با تو رای من است درد تو بهترین دوای من است آتشی از تو بود در دل من پیرزن در میانه دودافکن چون شدی وار با من راست دود دودافکن از میان برخاست به من از حمل شد شاد کهیز بردل عجوزم آید یاد چند از این داستان طب نواز گفت اون نازنی شنید به ناز. چون چنون دید ترک توسن خود راه دادش به سر به سوسن بود این ساکش بلبلی بر سریر قنچه نشست غنچه بش و گشت بلبل مست توتی دید پرشکرخانی بیمگز کرد شکر اپشانی. ماهی را در آب گیر افتاد رتبی در میان شیر افتاد بود شیرین و چربی عجبش کرد شیرین حوالت رتبش شب چو از نقش چین پرند گشاد حبل زرین ز درج غند گشاد دیب گنجینه ای به زر در خورد کردش از دیب های زرین درد زردی از که شادمانی از او، ذوق حلوای زعفرانی از او. آنچه بینی که زعفران زرد است، خنده ببین که زعفران خورده است. نور شم از نقاب زردی تا گاو موسا و زردی دربی آورد. زر که زرد است مایه ثرب است. این اثر عزیز از این سبب است. شاد این داستان چنین تمام. در کنارش گرفت و خوب به کام ارض کنم که چند تا نکته داره اینجا <تصفيق> یکی این که میگه که زعفرانی و آن چه بینی که زعفران زرد است خنده بیندان که زعفران خود است معتقض داند که زعفران مقره و هرکی بخورد نشاط و طرف میاره و حتی گفتن که اگرش کسی مقدار زیادی زعفر رو مخوره اینقدر میخنده تا بینده. یکی بعد اینکه که نور شم از نقاب زردی تا گاب موسی بحاظ زردی این گاب موسی قصه, قصه, قصه مفصلی است که در صوره بغره دومی صوره و مفصلترین صوره قرآن کریم آمده با اون قصه به طور کلی عبارت از این است که در مورد بحانگیری قوم ونی اسرائیل آمده که گفتن که یک کسی رو کشته بودن و قاتل معلوم نبود موسا رفت خومش کردند و موسا به تو تو رو مناجات کرده و خطاب رسید که بدون یک گابی بکشن و این کشتر رو بذارم تو توس اون گاب این کشته خودش میگه که من این کشتی هم یک گاب بکشیم و قوم که این گاب چه رنگی باشه از میرفته و میرسه خدای چه از میاد میگن خوب این رنگ تموم باشه یا خال هم داشته باشه ایر ندارم باز, باز میده کلاصه نتیجه به اینجا میرسی که بلاخره در تمام قوم و نیسا یک دونه گاف پیدا میشه به اون خصوصیات، سفرا اون فاق و اون لونه ها تسر ناظری که اونم صاحبش میگه که ما نمیده <تصفيق> بلاخره میخوان رازیش کنن مبلغ بسیار گذافی پول میدن براین اینکه اون گاب رو بخرن به باهای خیلی سخت برابر باهای اون گاب برای اینکه همین روی ایراد گرفتن روی سوال کردن و روی, روی متب خشوال توزشتن خودشون موجب شدن که اون مطلبی که خیلی سل و آسان به دست می آمد این گرفتار خیلی اینی که می که گاب موسا باها به زرد نیافت میگه که گاب باید گابی باشه زرد رنگ باشه, زرد باشه که رنگش شند ت مایه خوشحالی بینندگان بشه و اینا اون به مصدقه